دائمت و علا دائمه, دائمه اللهم و فقره و رحمنا به شد که در اصول متأخر معلومت چون نسبت ورقیه نمیده کلمت که متعبید شده اشکال معروفی است در اینجا که آیا آیات مبارکی که دلالت در عظم اتباعه میکنه میشه این آیات سبب بشه که از سیر درست برداره البته اصلی این شبه هست، اصلیم این استدلاع در کتب احزه سندن در سابق شده اما این اشکال دور رو از که الان نطرح کردن و الان در کتب اصول قدیم همین آیات رو بردن برای عدم و خبر به طور که خبر مفید زنه اینه زنه لایقونی من حق شیار اما این که به سیره تمسک بکنیم و نسبت به این آیات و سیر رو بررسی بکنیم این تا که من میدونم چی این اصول متاخر چی آمده اگر آن مراجعه داشتن در این برنامه کامپیتری غیری بعدشم خبر بده الان مرحوم استاد متعرضه جوابی اول شدن بعد هم یعنی اون جوابها رو رد کردم بعد من اجباراً مطلبیشون رو ارز میکنم و بعد خودمون مسئله رو با تحریدش رو ارز میکنم در صفحه 232 می کنون صحیح در مقام جواب اول هم نقع بعد هم رده فشریعت المقدسه انهاد حسیره ما یقین داریم که این آیات شامل این سیره نمیشه ها و استمرارها بین المتشرع و اصحاب العیم علیه السلام بعد نزول ال آیات البته حالا ایشون چون قرد دارن و قطرم حجیتش جزاتی میدونن خودشون مسئول از فتح خودشون هست غیر الله عرض مسئله حجیت خبر باهه یه مسئله است که اختلاف انگیز بوده و حتی سابقا نهست به پیغمبر اکرام هم نسبت دادن که حدیث علی کرد که علی که به اصرائ می که درخت انگور میذارن دست به اصطلاح چی اصطلاح معروز در درخت انگور دار بستی وا و به اصطلاح مثل تختی انسان بگذاره جلو و علی که اون چیزی که و تکر میدن من میگذارم ن ازما نفسده که خواهد آمد که ادهی اشماع رو حریکه نیچستن مشروف از همکورنه می روی جات به اصطلاح بنده شیرمی جاتن بعد میگن فران حدیث از پیغمبر نه شده ایشون میگن من قبول ندارم شون در قرآن قبول ندم این همین حدیث حریکه معروف که تمسرو کردن برای اثبات و خود. جیت به خود بر همچونی این بود یعنی اینطور نبود که مسئله خبر مسلم مسلم باشه حتی به این اصح این نعمل از صحابت تا به این به خبر سقه پیر و قابل این کار ارز کردم این تمثل در کلمات احل سنت هم آمده و که نه کردم اون مشکلش اینه که خبر محتیقنش واضح نیست مثلا جایی که وصوح پیدا میکردن جایی که عدل بوده معلوم نیست به غیر عدل عمل کردن جایی که مثلا مطلب واضح بوده این, این که بشان میفرمایم درسته اما به نظر تفصیل و دقیق و خصوص سغه این عنوان این عنوان سره علاوه بر تقدم بیان او فی تقریب استدلال به سیره از ایشون در استدلال به سیره تقریبی نگفتند. فقط همین در اینجا که بانه ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه عمل میکن و ثانیا ملغز انزاله پس یکی این که ما یقین داریم خب یقین نیشان برای خودشان همون جد دارم ملغز انزاله این نظار من لسان ال آیات کنها ارشاد این نقطه دوم خوبه که این آیات مولوی نیست هم حسولا به العقل، من تحصیل المؤمن من ال اعاب المحتمل یعنی آیاتون باره که ناظر هم به که انسان باید در مقابل اقابه الهی مؤمن بیاره خب سیر آمده که خبر سقه مهمنه پس مشکل نداره ولی انتها اله ما یعلم و به هل هم ولی اله لا تکن و قابلت هم لی در این که این آیات قابل تخصیص نیستن معنای آیه این نیست که لا تحت و ماله سلکه بیه علم الا در مورد کلانی قابلیه چون قابلیت تخصیص نداره احکام عقلیه و کیفه ممکن امتدام به تخصیص بعد. بعد می که به شیط مفاد ال آیات اوال ارشاد الاغفر ال آر به دفع زرر محتمه اینکان اخرگی هم تو آیات نداره محتمه زرر محتمه اخرگی ایشون فرمده و یکون الخبر بعد قیام سیره على حجیتی خارجن عن ال آیات به ورود بعد از اینکه که سیره حجیت پیدا کرد این از مورد آیات به ورود خارج اد معلا به تخصص ورود یعنی بین این منناکه شارره چون تعبد کرد ما رو به قبولسیره سیره, سیره توت کرد به خبر سروت شار هم امضا کرد پس این بعد از ت خارجه. من از کردم چون کلمه ورود و کلمه حکومت بعدها در اصطلاحات ما وارد شده یه مقداری خالی از اغام نیست. کلامی ورود و حکومت مرحوم استاد چون خودشون کلام خودشونه عرض می کنم استاد نظرشون اینه اگر یک جایی تعبد آمد به مجرد تعبد یک موضوع از لسان در خارج شد به مجرد تعرض این رسمش می بود اگر بدون تعبد خارج شد تخصص مثل اکرم العلماء یادل شامل نمیشه این تخصص اگر به مجرد تعبد تا تعبد شد خارج شد اسمش وروده اصطلاح ایشان بعد نیست اصطلاح که ادهیم میگن اگر اضافه بر اینکه اگر در تعبد آمد تصرف کرد در موضوع اسمش حکومته اگر به مجرد تعبد خارج شد اسمش وروده اما اگر احتیاج پیدا کرد که یک نوع تصرف بکنه مثلا لا شکل کسی در شد به این شد که شکل کسی رو شکل برداشت این اسمش حکومته حکومت در اصطلاح ایشان اینه اما در مانه اگر سیرا آمد که خبر سوه علم و حجت و شارم اینه امضا کرد به مجرد این تعبوت خود به خود خبر از موضوع آیه مبارکه لا تقب و مانه سده بگه ام کارشو به مجرد تعبوت نه اینکه آمد گفت من خبر رو به منزله علم قرار میشه او من اگر گفت خبر رو منزله علم قرار دن به شما اما به مجرد تعبوت خاال شد میشه ورود اصطلاح ایشان اینطوریه اینشا این طوری. ایم ایم اصطلاح روشن باشه. که ساائل امارات مؤتمره میش در امارات در امارات بعد همینطور ذ شد لدم احتمال اغاب معل عمل به و خود جتون و و ال مخالفت حال الواقعه حال خبر بعد از قیام این اشکال اینه که شما مطلب رو عوض کردید یعنی قبول باید بشه که اگر تعبد بود لا تخفو اگر مولوی بود اشکال دور لازم میاد ما مولوی نمی دونیم ارشادی می دونیم معکون ها ارشادن بعد کون ارشادم ارشادن لا حکم الع یکون حاله حاله امارات مع الاصول العملیه البته اصول عملی عقلیه رو پیشون مؤثر که به نحو ورود خارج اصول عملی شرعیه به نحو حکومت و سال است اگر نه اعماز نه انزالگ و, و آیات حکم نهولی این همون اشکال معلوم و حرمت العمل تل علم و غیره ایر نبودن نصیرت حاکم تونال آیا پس اشکال دوم یا دومیشون ورود جواب ثبا می حکومتی فرق بین ورود و حکومت هم روشن شد در ورود به منجرد تعبد خارج میشه، در حکومت به منجرد تعبد نه یک تصرفی میکنه. مثلا میگه اکثر علما بعد از ظاه دول متقی آلمان این حکومت. یا مثلا فرص میگه بچه واجب از نفر بعد میگه افرادا مثلا فرضو خواهر انسان یه رموزه واژه بعد میگه اونی که از رضا پیدا میشه خواهر رضایی هم خواهره این تعب این حکومتی این اصطلاحت چون تصرف در موضوع رو حکومت میذارن تصرف در حکم و تخصیص میذارن اگر گفت مثلا عالم فاسق لایجب احترام این رو تخصیص میذارن اگر تصرف در موضوع بود اگر خروج موضوعی بود تخصیص میذارن خروج حکمی رو تخصیص میدونن خروج موضوعی که به نفر اصل تعبد خارج بشه ورود میدونن خروج موضوعی که با تنزیل مو... غیر موضوع مکان موضوع اینو حکومت میدونن ایشون میگه نبول و نسیره حاکمت و بعد جواب دومیشون ورود بود مثل امارات عقلیه گرفتن جواب ثبومیشون حکومته لان العمل عمل بل حجج الاغلائی القائمت علال عمل بحاصیرت الاغلاء لایکن ها عملا به غیر العلمی نظر الارف و عرف اوغ ها. و ظالم یه من از و تابعین و غیره فل عمل به زوابه چون باایی که زوار مفید زنه درس این نظر معمه استاده که زوااهر مفید زنه از کنی این مفید یقنی این استطلاشان روشن نیست. مععملل آاط ناحیه ل عمله به غیر علم به م و مصمع، مه به زواهر عمل کردن ایشون گه همچنان که سیره هست در عمل به زواهر سیره هست در عمل به خبر سبه چطور زواهر از آیات خارجی خبر سبه هم خارجی و هم نهر لسان فلیسه داره که ایلا لعجل نه هم لا یران لعمل به زواهر عملن به غیر علم به مختزا قیام سیره و عمل به این توضیحات در بحث زواهر گذشت هست کردیم به نحوه اجمال در بحث زواهر دو تفکر اساسی وجود داره یکی این که حجیت زواهر از این جهت که طریق است برای مراد متکلم و این طریق طریق زن نیست و زمین زواهر مفید زن نیست. چون راه هست و این که کشف مراد بکنم راه دوره که ما اصلا دنبال مراد نیستیم اون قدوز لحظی رو نگاه میکنیم. مراد متکلم هرچی مخواد باشه اگر این رو بگیریم زواهر قطع زننی زنی نیست اینشون مثل زواهر رو زنی گرفتن دنبال مراد رفتن کسانی که حجیت زواهر رو از باب کاشفیت از مراد ندونه زننی ندونه که مثلا مراد این آقا اینه اما کسانی که میگن ما کاری به مراد نداریم لحظ چقدر قابلیت داره مثلا اگه آب بیار این لحظه آب خیلی قابل حتی اگر آب این طرف فس با منثال از اتف شما رورد. حالاقطا <تصفيق> مراج این نیست که در درقدر یا آب بیامراجشمثل آب قدر به شما باشید. بلکه لظ این قابلیت داره ما دنبال مراج نیستیم دنبال قابلیت لظی. و لذ از که این بحثی که از قدیم هم مطرح شده این که از قبل اول دوم حتی فوقه های اهل سنت هم مطرح کردن اون نکش اینه نکه خندیش اینه مثلا مطرح کردند که لظی که مشترک، دو معنا ازش اراده بشه بحث بحث اینجوری کردن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممکن است یا نه ما اسکرین بعضی از معاصرین نوشته به این که چرا بحث از امکان کردن بحث از وقوع کردن این بحث قبلا هم کرده و دیگران مستفاد دارند که بحث از امکان یا وقوع اینا گفتن چرا بحث امکان کردیم بحث وقوع بکنه توجه نشده این نکتهش این بوده اونایی که بحث امکان کردن من توضیح دادم چون یعنی اگر ممکن شده اراده دو معنا پس حجت درست بکنیم اینجا مثل امور تکمینی نیست مثلا اگر ممکن شد که زید بچه داشته باشه پس الان بچه داره و این تو تکمینیات رو میدونم اگر ممکن شد پس داره درست نیست اما تو الفاظ اینو گفتم دقت بکنیم اگر ممکن شد که لفظ در دو معنا اگر این لفظ این واقعیت داره پس اینجا مثلا سلاست و غروب دو معنا اراده کده باشه همه هی هم تو خب دقیقی این که در اگر لفظ برد در لغت عرب به معنای ولی ازا اگر دقیق کنیم الان کتب از رو ما نگاه یعنی استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممکن است دقیقی یا نه خب این از کارم شده ورزه نشده یعنی چه ممکنه ممکن خب ممکنه هست اینجا ورزه آقای میکنه؟ نه این توجیح نشده اگر ممکن باشه اگر ممکن باشه پس اراده شده این خصوصیت که به لرز برمیگرده این ای که آدم خوبی نمشن عمل و زواهر با اینکه که علمی روی اون مبنای سوچند رو شد روی مبنای بیشار روی شده بس برو سویی مدنای... خود ایشان در بحث زواهر قبول نکردن خیلی عجیبه چون اون مبنای مشغول ولی خود تو بحث زواهر این مبنا رو قبول نکردن که زواهر حجیت تریقیت به مراد متکلمه نقصه اونجا اینه حجیت زواهر از چه جرده یک تریقیت به مراد متکلم کشف از مراد متکلمه این کارشو کارشو کارشو بزن نیه بکی اینیست دو ما کار به مراد متکلم نداریم خود قابلیت لحظه نگاه میکنیم گفت آم آم مطلقه آم کاره شمالی هم بیارن با توی شما هم بیارن کاری ما هم آب بکشه همین آب خود ما بکشه یعنی هم فرم میکنه هر جور آب کاشه سرده میکنه دقتی اگر گفت خون خون نجسه هیچ فرقی نمی کنه خون از خلیه مصن باشه تو بدن ما باشه تو بدن مصن باشه تو توهوا باشه خون خونه دیگه حالا بگی شارع مقدس صف میگه خون حرام الهی خون نجسه اجازهش بخونه توهوار نی اتقلافی شاید اونアレ اما بحث اینه که لذا این نکته فنی رو خوب دقت بکنید اصلا نکته این که ذریه لفظی رو با جدا می دلیل لحظی طبیعتش اینه که حد داره، مرز داره. چون حد و مرز داره، به عنوان اینکه یک حجت قانونی است، ما دنبال اون حد و مرزش می‌گیریم. فقط اختلافی که بین ما حد و مرز رو قصد متکلم بگیریم یا حد و مرز رو قابلیت لفظ بگیریم؟ محاقضه که سو نگیره در مراد آه. اونا بیان محاقضه بر مراد اینا بیان محاقضه بر قابلت لفظه از چون نقصه این است دلیل لبی حد و مرز نداره و هدف از دلیل لفظی اصولا ما چه بار ارز کردیم ببینید ما مثلا این فلان لفظ اطلاق داره مراد از اطلاق در اصطلاح و اصولی ها دلیلیست که دارای حد و مرزیست که هدف و از اون حد و مرز خوب دقت کنید رفع شک باشه این نکته مهم اینی که اخباری اخباریا گفتن اهل الله مثلا اطلاح من داره چون میگن آیات کتاب تو این مقام نیست و اگر آیات کتاب تو این مقام باشه اهل الله گفت به درستی هرچی عنوان بی داره صدق گفت این مرضشه مرض صدق عنوان بی کم دقت وکنی اگر اخباری ها میگن ما خود زواهر رو حجت نمیگانیم خب دقیقه بکنیم اونا نکتهشون اینه و ولذا ما بحث زواهر نیست ولا حلال لاربه به لحاظ عذبی خب اطلاق دارم اون یه آیات کتاب به این اساس ناظر نشدن که ناظر به حد و مرز لحظی باشن شارعه مقدس اون حد و مرز رو در بیانات عیمه آورده این بحث لنزی دید. این بحث لغوی خوندیم عبارت اخباری ها اخباری ها میگن اطلاقی کتاب وقتی ثابته که در کلمات ائمه بیاد اطلاق یعنی به عبارت اخرار نه اینکه که بحث از که هم ازش کنش کار عموم نداره مثلا عبوق الاغوق اموم نه دارن نکته شو این می تا زر بمونه دشنو اگه اگر کلمات اعیمه علیه مستان بیان نکته چه این که در این شریعت مقدسه این حد و مرز با اطلاقات کتابی نیامده حد و مرز با اطلاقات و عمومات سنت اونم اند... طریق اعیمه علیه مستان هر بولا اینه خلاصه عبدون اینه این حرفا روشن بشه بحثی که در اینجا هست مرحوم استاد میخوان بفرماد در فرض هم مولوی باشه این خارجه چطور زواهر خارجه من آیات ناهی عمل به غیر الال اما در زواهر هم این هست اون کسانی که اشکال میکنن یعنی زواهر تا اون جایی که مثل داره بارزه قبول میکنیم جایی که ابحام داده قبول نمیکنیم این که ایشون میکن. نه اینم در زواهر هم اتفاقی نیست بله ولی سداره که الا لعجل انهم لا یران لعمل به زواه به مقتضا قیام سیرته به اغلاع علال عمل به و حال خبر استقیل یا حال ظواهر من حیث و قیام سیرته عل عمل به یا قیام سیر یعنی حیثو دایمون باید به جمله اضافه بشید فکمان نصیرت حاکمتون علال آیات به نسبت که زواهر کذالک حاکمتون علیها به نسبت علال خبر استقیل پس بنابراین ایشون از این سرام به تغییر خودشون جواب دادن یکی اینکه که به سیره قطعیه بین متشرعه میدونیم آیات راده نیست دو این که نسبت ورود سه نسبتشون نسبت حکومت من از کنم یک کنگی دیگم بحث رو بخونیم در کلمات الان اون وقت داریم توضیح خود بحث رو به اصطلاح انجام بریم در کتب مثل کتاب مرحوم آزیا و مرحوم ناینی قدسال الله ور این بحث رو در اینجا به اصطلاح بله این بحث رو هم مرحوم ارضی ها هم مرحوم نائینی در زیل ادله نافین اوردن مرحوم آقای در زیل ادله مسلّطین اوردن این دو بزرگوار لذا آن خواستم مراجعه کنن این دو بزرگوار تو بحث قبل از آیه نبر اینها اونجا اوردن چون اول عدل ما اون عدل رو تو بید آقای کویه نخوندیم بعد این شاله بناسی خونیم نافی نگذاشیم برای بعد بعد ایشون میگه و عمل آیات این من از جلد سه اصول مرموم ناینی تراز مرموم ناینی سفیه 16 فلن مساغها حرمت العمل به زن خی بابل اقاعد و اصول دین این جواب اول که دیروزم اشاره کردم. یا همان که اینم هم جواب اول مرونه و علاوه بر تسلیم عمومها ل مطلق الاحکام شرعیه صغایته انتکون تكون دلالته علی المنع عنه ظن الحاصل من الخبر الواحد به عموم این عمومی ظاهره اضافه شد خیلی صراوت من تخصیصی به واسط من نроде داله دال علی جواز العمل به خبر الواحد بعد اینکه راجع به ادله سمعیه میگه و اما اصلیه اصول عقلائیه فیمكن به وجه انتکون نسبت او الایات ناویه نسبت این نسبت الورود جواب دوم مرحوم استاد بود بل التخصص میگه استاد این نفر بوده استاد یکی ورود یکی حکمات ناینی نا اصلا یه خروج اوغلات خروج موضوعی داره از نظر علما که جاهل از این شامل نمیشه لان عمل ال به خبر ثقه نیست من العمل به ذهن لعدم احتیاطهم ال احتمال مخالفه ذل خبر ذل واقع فالعمل به خبر ثقه خارجون به تخصص ان العمل بزن. پس این اما اگه اضافه بکنیم به جواب سه تا جواب مرحوم استاد چهار جواب میشه فلا تسلقه لآیات الناهیت و, و عنال عمله به به انتکون رادعتم همین بحث را انسیرت الاغلائیه القائمت عنال عمله به خبر السقه فه این نبو مزاقن الى خروجه لعمله بیه ان موضوع آیات الناهیه و نخیل زمان دور دور رو ایشان مطرح یاد دارن علمها لعن ردع انه سیره بالآیات ناهی یتوقف علا الله تکونه سیره مخصصتن لهمومه ها و عدم و کمنه ها لها یتوقف علا انتکون را زرزن و این منعت انزاله که کله فلا اقل من انیقونه ها سیره حال سار العدله علا حجید خبر واحد من کنه ها حاکمتن بحث حکومت هم مرمو اصداد نهار فرمدودن جواب سوم هم بود و المحکوم لا يصلح لعنیقون رادان عن الحاکره این راجع به جواب مرمون هاینی جواب مرمون اجمال داره مرمون استاد به این لحاظی بعد کلمات آزیارم ها را کردیم میخونیم ایشون میفرماید که لا يخفا عبول چون مرحوم آزیار در اینجا در تقیداتشونه که کلم کلام طولانی تره من اکتفا میکنم به هاشی ایشون بر فواهد ارز کردم این در زمان خود مرموم آزیا پخش شد هواشیشون داشتن بر تغییرات ناینیک بر فوادر اصول که در اون چاپ سابق چاپ نشده و در این چاپ جامعه مدرسی این هواشی چاپ شده و انصافان هم خلاصه افکار آزیا به تیراش همینه حب که همه کتاب نیست و الا خلاصه افکار مرموم حقیق عراقی در همین هواشیشون هم عقول و من برای آشنایی آین با مطالبی که تا شده. این کلمات ایشان را هم کردم تونم. اول نه به معاده، الذي من هذه جهی یا خلوت سیرت در امور آخره. این انس... به, الى امور... به <تص> <تص> ما... لا این به نسبت این به, نسبت... این به, نسبت... اینه یکون به نسبت... فلاش و حتی اصل استقرار این منوط به عدم رادعیت آیات ناییت انها چون در عمور ما آن فرقی با به اصطلاح متشبعه با اغلا ندارن فمه مستقررت سیره یستکشف و انهو لایکونو فل براد اون ولامان آن به ای وجه این شبیه جواب اول آقای خوبیه که چون ما میدونیم قطعا متشبعه عمل کردن پس سیر رادع نیست این آیات راضه نیست این راجعه به امور معاد و اما سیرت هم فی امور معاشه هم امور فهجیت هم مبلیان امضا امزا شارعیان فشتری یاد اگذن که شارعه امضا کرده که ماه وشن فی سیرت هم فی امر معاده به مذهب هم ال خارجت به مذاهب هم خارج از مذهب و اما فعن حجیت و, و ایزن در مآد هم اگر غیر سباقه ما داشته باشه ایزن مبدیون علا امضا لهم و خیه هاده سوره اگر بنابشه که به اصطلاح سیر امزا بخواد، لا تسلح هاده سیره این سیره اغلایی در امور معاش لا تسلح مخصصتن ولا ورودن ولا حکومتن علال آیات ناهیه چرا لان ها ده بعد الفراغ من حجیتها بعد از اینکه این سیرا حجر باشه و ها ده فراغ از حجیت تون علا عدم راضعیت لآیات ناهیه همون اشار دور معروف این باید حجت باشه اگر حجت میخواد باشه آیات باید رادعه نباشه آیات وقتی رادعه که این حجت باشه فعدم رادعیت ها عدم رادعیت آیاد یقع و فبروت سابقه ان حجیت ها این تعبیر مرموم آزی من بر توضیح ارز میکنم این شاید اینوز برسیم این تعبیر آزی ها شاید یک مقدار مشکل به یک نقطه لکیفی باشه خوب دقت بکنه شاید من عرض میکنم میخواد آرزیات بگه این دور مصطلح نیست اشتباه نشه اون دور مصطلح در امور تکبینی و حقیقی در مبارس علت و معلول ذکر میشه این دور دور مصطلح نیست این استلاحا این است که میگن رتبه موضوع قبل از رتبه خوب و بحث اگر بنابشه موضوع بعد از هرم تحقیق خیدا کنه این درست نیست تقدم رتویفه یعنی ما شعنه ها تقدم تأخر پیدا میکنه این بحث دیگری این درسته اینم شبیه منات شبیه دوره اما این دوره مصطلح نیست چرا؟ چون اگه گفت اکمل علماء مثلا اقم سرات دلوک شمس اول با دلوک شمس باشه تا اقام نماز بخواه دلوک شمس دلوک هرم نمیان این یک بحث دیگری که اگر بنا بشه خود اگر بنا بشه یک موضوعی به خود حکم و به عموم حکم ایجاد بشه اونجا دیگه نمیگیره اون ادله اونو نمیگیره مرحومات باید اشار حالا چون دیگه خود دیم حرفیشون من خواستم این توضیح و توضیح بده. یک مثال معروف دیگه هم هست اون مثال من بزنم. دیروز مثال قانونی زدیم این روزه مثال اثباتی بز یه مثال معروفیه من سابقا از شنیدن ظاهر این توشینه که مثلا معلومه استاد یه مدل در بحثشون این مطلب رو نمیترسه ولی 8 سالی توهم بودن نشینه ازشون در این کتابهایی که ازشون دیدن نه جایی مطلبش شاید در این, در این مدل در در درس در داشت. یه بحثی در رجال که مثلا گاهی اوقات مثلا شیخ میگه مثلا ابن عبی اوما سرعتم اخبر بنام به جمیع کتبی و روایتی فلان ان خدا فلان رو روایت کرده و این سند صحیح خوب این سند شیخ آبا فرضون در فیقه به جمعی کتب و روایات ابن نبی عمر صحیح باز بیم تو تهذیب می‌بینیم شیخ یه خبر رو فرضون نه از یک آقای از یک آقای از ابن نبی عمر و این سند ضعیفه این سند یک زحضیب تا ابن نبی عمره زعیف اینه بعضی هست میمونم گوتن نظریه تحویزی بعضی آدم گوتن خیلی خوب اون طریق ضعیف رو بر برمی‌داریم میگیم شیخ میگه نگفت اخبرنی به جمیع کتوبی داره وایاسه خب اینم از روایته نبوی اون طریق اشتباهی که صحیح بود طریق عام ایشان پس این طریق ضعیف رو با اون طریق صحیح درست می‌کنه عذرا من گوی در ناجم می‌شیدم که امام رضا شا تو درس هارم بوده من تو درس پشمیدم یعنی یک بار هم ایشون در این نوشته‌ها ایشان از این طریقات ایشان چاپ شده ندیدم حال شو تو درس علوم قرآن در درو بعضی از روزوزا رحمهم حالا این مکتبو در این مدنه راهغول داشته خب این اشکالش همین اشکال اینجاست عین همین اشکاله اشکالش هم اشکال دورغول‌ها این دور نیست تقدم رسو و تاخر رتبه را حساب کرده چرا چون این یه اخبرنی به جمیع روایات اگر روایت معنیش چیه ما مائسه و اسناد و ادبییم روایتو خب این با سندش صحیح باشه اگر سند شما تایب نبی عمر صحیح بود یه روایت ابن نبی عمر پس بنابراین اگر این عبارت اخبرنی میخواد شامل اون حدیث ضعیف بشه که طریق شیخ تو ابن نبی عمر این معنی است بر اینکه اون طریق ضعیف رو با این عموم صحیح بکنه چون اون طریق الان وجدان ضعیفه اون طریق الان ضعیبه اون بقدر می شما بگید اخبرانی به جمعی روایاته شامل این مورد میشه این روایتون لیکن ضعیب بعد از اینکه شامل شد چون اون طریقه عام صحیحه پس این روایت صحیح میشه. این اشکال دو رو اونجا این اشکال دو در منحنوزیه چون در اونجا به اخبرانی به جمعی روایاته روایاتش کده روایتیست؟ بدر اگر شما یه با سند ضعیفم رو خوب دیگه می‌خواد شما تماسکی بکنید شما روایات ابن عبیره اونها هست که بچین او اسناد بدین این سر صحیح باشه کی می‌توی این بن اسناد بدین که این عام شاملش نشه چون الان که سند ضعیفه الان که اینجوری می‌گیره روایت ابن عبیره باید این عام احذرن بشه میاره واسه شاملش بشه کی شاملش می‌شه که سند صحیح باشه کی تنگی میشه این عام شاملش بشه این یه بحثه معناطیحه این یه بحثه معناطیحه که از کلام اشکالش اشکال اثباتیه به چه معنا چون این که این روایتش باشه مبتنی است بر چی بر اینکه خودش فی نفسه صحیح باشه بر صحیح بودنه صحیح بودنش هم مختلف که این عام شاملش بشه یعنی شما وقتی موضوع روایت رو با خود حکم درست بکنید موضوع رو موضوع شما عنوان واجبنابی عمر بعد از اینکه این آن شامل شد موضوع درست میشه این همون اصطلاح معروف که نمیشه موضوع رو با حکم درست کرد این استراتیژی همینه این میگن دو جور مرادشون اینه اینجا بحث علت و معلول مطرح نیست بحث موضوع و حکم مطرحه حالا تقدم موضوع برو تقدم علت بر معلوله تقدم جوهر بر عرضه هیچ کدوم نیست. تعریفشان اینه هیچ کدوم نیست. این نمونه. این عنوان خاص و خودش داره. این این بحث امر انسانی. ولزا خود دقت بکنید مروا آسیامیه سعادم و رادئیت‌های یقعو فی رتبت سابقه. بحث دور اثرای باید راءد نباشه تا بشه حجه. لعنهو به منزلت شرط ها البته این منزلت شرط ها به همه تکمینی هم میخوره فف رتبت سابقت از حالت العموم فن نواهی محکمتون فیخ رجو مثل هو ان الهجیه وحینه ازه کیف یوشکل و دور فرازهیه این اشکال دوره برمونه مرمونه این رو جواب میده مع کونه ادمه ها شرطن فی حجیه تا و این حجز سیره و حجیت ها موجب لبورود و تو ورود ها، او حکومت هاعل آاد دهاً متخر انهوجه متخرت عدم رادهیه و لازم او و نقیزه ان رادهیه فهینه ازن یستقه رو دور المزبور من طرف تخصیص اول ورود لل کاملا کمالای اخبا اگر آن دست دیروز یادم باشه از کردم چهار تا احتمال در این رادعیت و مخصصیت هست در مسئله دور در این که امکان داری یا نه یک احتمال این است که هر دو طرف دور داره هم رادعیت دور داره هم مخصصیت یک احتمال که الان نایمی گفتن رادعیت دور داره مخصصیت نداره یک احتمال آغازیام مخاطب دیگه آغازیام مخاطب دیگه مخصصیت دور داره رادعیت دور نداره چون میشه به عمومش عکس بکنیم احتمال چهارم هیچ کدوم دور نداره نه راضیهیت نه مخصصیت که از آدل العابد آیغوری همون ضربه بده این اشکال بله و من جهت ذالکه نبول و سیعتی فی محلی این نمایست لحال هجیه و تشبه بریفی حجیه تعمارت این نما هوسی در طور اغلاییه المستقرفی امور همو شرعیه علا وفق مذهب نام در اون جایی که به اصطلاح در امور متشرعه بار باشه نه اغلا به ما هم اغلا ایده هواللذی لایکا دارد ال آیات لایکا دارد ال آیات در که پایم گوه هست غلطی هست دارده خیلی لأن نفس وجودها ملازمون لعدب مانعیت العایات بله احتیاج حجیتها علا عدم راضعیت الآیات، به خلاف سیدات الاغلائیه اما اگه سیده اغلائیه سرف باشه الجاری بی اموره هم. الغیر راجعه علا شرعیات مذهبنا فه این حجیتها مقنیتون علا امزا اشاره الملازم معدم رضه این در ناهیه اگر سیره اغلایی صرف بگیریم دور لازم در ناهیه مخصصیت سیره اغلا به ما هم شر و امور شر این دیگه اشکال نداره ولی این ما دور قد این نمایت مفی فرض اختضاء حجیه فی نفس سیره و اد در رد امان اون هم فه لابد و انیخون المانعی تعلیقیت هم سلام محیس تأثیر المختصد تنجیزی مورد از تنجیزی یعنی به اصطلاح حجیت فی از فی ارفع موضوع علمانه اما اداغول به امن قوام حجیت این سیره به امزا اشاره به حیث و لولا لقت ضاعفی نفس بناه همدل حجیه اگر امضا نبود اثر فی نفس حجیتش کافی نیست ایچون از این راه باید میشه. و ان ال امضاء المزمور متمم الاختزائيه اگر اینجوری قائل شدیم فلا یکون اختزا و حالل و جی و سیره الا تعلیقی هم و معها در بحث لا مهیث ان تشکیل دو فی طرف المخصصیه ل ایشون قبول میکنن که اگر خلاصش اینه اگر بحث بحث شرعی باشه میشه قبول کرد اما اگر بحث بحث اوغلايه صرف باشه راضائیت دور داره اما مخصصیت داره دور نداره مخصصیت داره خلافاً للمحقق ناینی این خلاصه تلمات مرحوم آغازیان هم با یک توضیح از کردم من من چون دیگه وقتم شد دو سه کلمه از رو روشن شد که اصطلاح دور در اینجا مفرح نیست اصطلاحی که الان مطرحه اصطلاح اثبات موضوع با خود حکمه یعنی خود موضوع رو ما بخوایم از راهو حالا اثباتشو و احوانشو به شمول حکم از این راه بخواهید وارد بشید این مشکل داره مشکلش هم در معنای احنافی خیلی واضحه اون مشکل اینه سر اساسی مشکل چطور در اونجا اخبرانی در روایات مشکلش چی بود مشکل عنوان روایات بود. شما باید با این عموم ثابت میکردین این روایت این مشکل اونجا این بود خلاصه این بود خیلی واضحه ما نحنفی هم همین آیا آیات مبارکه مانع از این سیره هستن روزه الان تدریر سبوت سیره مشکل چیه؟ مشکل اینه که آیات مبارکه درش عنوان لاعلمه این آیات مبارکه بنا شدن به اینه که سیره آمده گفته به این لاعلم عمل بکنیم لا علم و عمل دقیق کرد وقتی میخواییم بگیم به چون عمل میکنیم پس لاعلم نیست وقتی لاعلم نشد آیه مبارک شاملش نمیشه خب کی لاعلم نیست کی اگر آیه مبارک شاملش بشه یعنی اگر آیه مبارک را نباشه نواشه وقت لاعلم نیست چون سیره بگه این لاعلم نیست یا این لا رو بهش عمل میکنی یک علم دوستا یا مرود دیگه. یا تخصیص یا حکومت یکی از این انه های سیره بگه این لاعلم نیست آیه هم میگه که به لاعلم عمل نکنی خوب در قطع بکنی چه ای شما این لاعلم نیست وقتی که آیه شاملش نشه، چطور میشه شاملش نشی وقتی که این سیره صابه باشه که این سیره جدید وقتی که آیه شاملش داشته اون سر اشکال اینه موضوعی که احض شده در عمومات لاعلمه موضوع زنه این موضوع در همین سیره آمده این لاعلم هست میخواد اثرشو برداره مشکل اینه میخواد اثر لاعلم برداره وقت برداشتن این اثر متوقف است که آیات او رو نگیره چون اگر آیاتونو بگیره اثر برداشته نمیشه این سر اشکالی که در ما نودی هست اینه دوره مستقل نیست و امور تغییری نیست معلول نیست این یک نوع اعتبار یعنی اگر بخوایم بگیم البته مرحوم آزیا بگه این اشکال ما قبول میکنیم اگه در امور معاش باشه،, باشه در معاش نه در امور معاد نه ان توضیح خواهیم داد که اجرت نیست پس نکته اساسی در این اشکال اینه البته تمام این بحث که ما این روز انجام دادیم اینا تماما مبنیست که همچی سیرهی داشته باشیم ما اینشادا فردا از هم سیره نداریم اصلا سیره نیست که بحث به اینجا کشیده بشه. لیکن الان تقدیر حالا پس که نزیب قول مرموعه که بسید زباهه چنین سیره اغلایی داشته باشیم نسبت این سیره اغلایی با این عموما چیه؟ اصل بحث اونه یا واقعا نسبتش تخصیص شما همون ناینه احتمال دادن نسبتش ورود که در جاب دوش رو نسبتش نسبت حکومتی که در جاب سوم دادن یا نسبتش تخصیصی که در عبده از عباراته که اینجا اون لائم هست شما بهش عمل بکنی پس چهار تا احتماله تخصص هست ورود هست حکومت هست تخصیص هست. هر چهار تا احتمال هست یا اینکه نه هیچ کدوم از اینها نیست و اشکال مستقرد و لذا نمیتونیم به این سیره تمسک بکنیم چون شعن سیره امضا میخواد یعنی یا به تعبیر مرموازی ها خود سیره اغلا به ماهی سیره اغلا فی نفسه مختزی تام نیست مختزی ناقصه این مختزی ناقص وقتی تمام میشه که ادمه که امضا بشه شاره و چون در اینجا امضا مشکوکه پس این مختزی ناق این راه دیگری ای که عاضی رو برمدن ولذا این اشکال به حال خودش میمونه. قابل جواب نیست اشکال دور در ناهی مخصصیت سیره و یا حکومت سیره یا ورود سیره به حال خودش محفوظه این خلاصه بحثی بود که از آران که شما وقت همون که میدونم خیلی بزرش پنید فرضا ایشادات آنها توضیحات کاملی رو عرض می‌کنم اصلا اصلا محمد <تصفيق>